دوم این که گفتیم این اقتصاد درونزاست درونزاست یعنی یعنی از دل های خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد رشد این نهال و این درخت متکیست به امکانات کشور خودمون درونزاست به این معنا اما در این نحال درونگرا نیست یعنی این اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمون رو محصور می‌کونیم و محدود می‌کنیم در خود کشور نه دروزا است اما برونگراست است با اقتصادهای جهانی تعامل دارد با قدرت مواجه میشود با اقتصادهای کشورهای دیگر بنابراین درونزا هست اما درون گران نیست اینا که عرض می برای خاطر این است که در همین زمینه ها الان قلم ها و زبان ها و مغزهای مغرز مشغول کارند که بله اینا میخوان اقتصاد کشور رو محدود کنن محصول کنن داخل فلان انواع و اقسام تحلیل ها برای اینکه ملت را و مسئولان را از این راه که راه سعادت است جدا بکنند، انواع, تح... انواع تحلیل ها را دارن میکنن، من عرض میکنم روشن باشه برای افکار عمومیمون.